قصه های هزار یک شب شب پنجم حکایت ملکسند باد وزیر گفت چون است حکایت ملک سند باد. گفت شنیدم که ملکی از ملوک پارس همیشه به نخجیر رفتی و تفرج دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پرورد بود و شب و روز آن را از خود دور نکردی و تاسکی زرین از برای آن شاهین ساخته و در گردنش آویخته بود که هنگام تشنگی آب از آن تاسک میخورد. روزی ملک شاهین به دست گرفته با غلامان به نخجیرگاه شد و دام بگستردند قزالی به دام افتاد ملک گفت هر کسی که غزال از پیش او رد شود بخواهم کشت سپاهیان به قزال گرد آمدند غذال به سوی ملک بیامد و از بالای سر ملک بجست غلامان به یکدیگر نگاه کردند ملک با وزیر گفت چه می‌گویند؟ گفت ای ملک تو گفته بودی که قزال از پیش هر کسی به جهت او را بکشی اکنون قزال از پیش تو جسته ملک گفت از پی قزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم پس ملک از پی قزال به و شاهین بر سر قزال نشسته به چشمانش همیزد تا آنکه قزال کور گشت و گریختن نتوانست آنگاه ملک رسیده غزال را زپ کرد و از فتراکش بیاویخت ولاکن بسیار تشنه شد. به سایگ درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همی چکد. تاس را از گردن شاهین بگرفت پر از آب کرده خواست بخورد شاهین پری بر تاسک زد و آب بریخت. ملک دوباره تاس پر از آب کرد.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 شاهین به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کند ملک به فراز درخت نگاه کرده ماری دید که زهر از آن مار قطر قطره میچکید. چکید آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به مقر خود بازگشت غزال را به خانسالار سپرده خود بر تخت نشست و شاهین در دست داشت پس شاهین فریادی برکشیده بمرد ملک پشیمان و محزون شد چون ملک یونان حکایت بدین جا رسانید وزیر گفت ای ملک اگر نصیحت بپذیری برهی وگرنه هلاک شوی چنان که وزیر به پسر پادشاه هیلت کرده خود هلاک شد ملک گفت خدامستان حکایت حکایت وزیر و پسر پادشاه وزیر گفت شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت پسر خواست که به نخجیر شود ملک وزیر را با او بفرستاد ایشان شکار همی کردند تا اینکه به غزالی برسیدند وزیر گفت این غزال را بگیر ملک زاده اصب به تاخت و او غزال از دیده سپاهیان ناپدید شدند ملک زاده در بیابان به حیرت اندر بود نمیدانست کجا رود. آنگاه دختری بدید گریان. با او گفت: کیستی و از بهره چه گریانی؟ دختر گفت: «من دختر ملک هند بودم سوار گشت به نخجیر شدم مرا خواب در رو بود از اسب به زیر افتادم و راه به جایی ندانستم. ملکزاده به دور رحمت آورد و او را برداشته به خانه زین گذاشت و همی رفت تا به ای برسید دختر از ملکزاده درخواست کرد که او را از زین فرود آورد چون فرود آورد دید که قولی است، بد شکل و محیب و فرزندان خود را پیش خود می و می گوید که آدمی فربه از برای خوردن آوردم ملکزاده چون این بشنید دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود بلرزید قول گفت چرا ترسانی؟ آخر نتو ملک زاده ای؟ چرا به مال پدر از شنگ دشمن به در نمی روی؟ ملک زاده گفت دشمن من از من جان همی خواهد نظر قول گفت چرا پناه از خدا نمی خواهی؟ ملک زاده سر با آسمان کرده گفت اما یو جیب مستر رزاده قول چون این بشنید از ملک زاده به کناری رفت ملکزاده به پیش پدر بازگشت و حدیث وزیر با پدر بیان کرد دانیزه ای ملک اگر به گفته حکیم رویان دلمنهی در کشتن تو تدبیری کند و به زودی کشته شوی چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد ملک یونان گفت راست گفتی که او چنان که به آسانی مرا از برس خلاص کرد تواند که دست گلی به من دهد که من آن را بویده هلاک شوم. اکنون باز گوی که رای سواب کدام است وزیر گفت او را بکش و از شر او به راحت اندر باش و پیش از آنکه که او با تو کید کند تو هیلت بر او تمام کن در حال ملک یونان حکیم رویان را بخواست حکیم رویان حاضر آمد و آستان ملک را بوسه داد و گفت خدای خدایگان جهانا خدای یار تو باد سعادت ابدی جفت روزگار تو باد به هر کجا که زنی تیغ دست دست تو باد به هر کجا که نهی پای کار کار تو باد و باز برخاند فخر کن بر همه شاهان که تو را شاید فخر ناز کن بر همه میران که تو را زیبد ناز و باز گفت اندیشه به رفتن سمندت ماند آتش به سنان دیو بندت ماند خورشید به همت بلندت ماند پیچیدن افعی به کمندت ماند چون حکیم رویان عبیات به انجام رسانید ملک گفت دانی که از بحر چه خواستمت؟ حکیم گفت لا یعلم الغیب الا الله ملک گفت تو را از بحر کشتن آوردم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 تا تو را نکشم ایمن نتوانم زیست و همی ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی چنان که چوگان به دست من داده مرا از برز خلاص کردی حکیم گفت ای ملک پاداش نیکوی من نه این است ملک گفت ناچار باید کشته شوی حکیم رویان حلاک خیشتن یقین کرده محزون شد و بگریست و از نیکویی ها که با ملک کرده بود پشیمان گشت و گفت و وفاست در بنی آخر از زمان هان ای حکیم پرده ازلت به ساز هان تو قافل و سپهر کشنده رقیب تو فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان سیاف پیش رفته شمشیر برکشید و کشتن را دستوری خواست حکیم رویان بگریست و با ملک گفت ای برسر سر خلق سای عدل خدای بخشودنیم بر من مسکین بخشای پس از آن بگریست و گفت ای ملک پاداش من نین بود تو مرا پاداش همیدهی چنانکه نهنگ سیاد را ملک گفت چون از حکایت نهنگ با سیاد حکیم گفت حکیم گفت ای ملک در زیر تیغ چگونه توانم حدیث گفت تو از من درگذر و به غریبی من ببخشای که خدای تعالی بخشندگان ببخشاید پس دران آن هنگام یکی از خاسان پایه سریر ملک را بوسه داد و گفت ای ملک از او درگذر که ما گناهی از او ندیدیم ملک گفت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 ملک کتاب را بگشاید و صفحه دست چپ سه سطر بخواند. آنگاه سر من در سخن آید و آنچه را ملک سوال کند پاسخ دهد ملک را این سخن عجب آمد و حکیم را به پاسبان سپرده جواز رفتنش داد حکیم به خانه خیش رفته دو روز در خانه همی بود روز سوم در پیشگاه ملک حاضر گشت کتابی کهن با مکهلهای در دست داشت طبقی خواسته از آن مکهله اندکی دارو به طبق فرو ریخت و گفت ای ملک این کتاب بگیر چون سر مرا ببرند بفرمای که در همین طبق نهاده بدین دین دارو بیالایند که خونش باز ایستد آنگاه کتاب گشوده بدانسان که گفتمد سه سطر بخوان و از سر من آنچه خواهی سؤال کن ملک کتاب بستد و خواست که آن را بگشاید ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت انگشت به آب دهان تر کرده ورقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمیشد. چون شش ورق بگشود به کتابندر خطی نیافت گفت ای حکیم خطی در کتاب ندیدم حکیم گفت ورقی چند نیز بگردم ملک اوراق همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک کارگر آمد و فریادی بلند برآورد حکیم رویان چون حالت ملک بدید گفت ای ملک نگفتمت هضر کن زدود درونهای ریش که ریش درون عاقبت سر سرکند به هم بر مکن تا توانی دلی که آهی جهانی به هم برکند و هنوز حکیم عبیات پنجاب نرسانیده بود که ملک درگذشت. چون سیاد سخن بدین دینجار گفت ای افرید. بدان که اگر ملک یونان قست کشتن حکیم رویان نمی کرد خدای تعالی او را نمی کشت نیز ای افریت اگر نمی خواستی که مرا بکشی خدای تعالی تو را نمی کشت.